الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي للحق والموحي للباطل وعلى آله وأصحابه الذين هم بارزوا بالإسلام على خلاف ما عليه الضالون أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للذي يأقوى وأيزا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذعو به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم حاضرین کرام و مسلمان های متدین پروردگار عالم را اظهار سکاس و امتنان میکنیم که باز هم برای هر فرد ما شما توفیق عطا کرد که در یکی از اماکین مقدسه و معبدگاه الهی گرد هم جمع شویم و یکی از ارکان دین مقدس اسلام و شعائر دین مقدس اسلام را که نماز جمعه است با وجه و اکمل عداب سازیم در این راستا از پروردگار عالم توفیق بیشتر را خواهان هستید حاضرین کرام می خواهم امروز در رابطه به هدایت همراه شما صحبت کنم. هدایت یعنی چی؟ و آیا هدایت در قدرت و در اختیار بند است؟ یا هدایت در دست بلاکیف پروردگار است؟ کسی را که بخواهد پروردگار هدایت می کند؟ اما هدایت کسی را که پروردگار نخواهد او در گمراهی و در بدبختی افتادگی می باشد اسباب و عوامل هدایت را پروردگار عالم برای جامعه بشریت فرستاد است اسباب هدایت کلام الهی است اسباب هدایت انبیاء علیه مصلاة و السلام که از زمانه آدم علیه صلاة و السلام إلى رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نبی در تعقیب نبی دیگر پروردگار عالم فرد تمام انبیاء اله مصلا و سلام مردم را به طرف دین پروردگار به طرف وحدانیت الهی دعوت میکردند انبیاء اله مصلا و سلام اسباب هدایت بودن و همچنان اگر ما شما کلام پروردگار را دقیقا مطالع کنیم از مفاهیم کلام پروردگار چیزی را عکس نمایید هر نکته و هر کلام و هر آیت پروردگار عالم کلام پروردگار عالم برای جانعی بشریت هدایت است همچنان علمای کرام در هر جای و در هر نقطه‌ای که مردم را به طرف دین الهی دعوت می‌کنند، از فجایع منکرات مانع ایشان شود واقعا یا هم اسباب عوامل هدایت هستند. صحابه اکرام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هم اسباب هدایت هستند چنان چه رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید اصحاب کن نجوم با ایهم اقتدیتم اهتدیتم اصحاب ما تماما به مثل ستاره اند در تعقیب و عقب هر کدام ایشان که شما اقتدا کردین اقتدا کردین شما ره یاد نشد اسباب عوامل هدایت هستند اما نفس هدایت بذاتی در دست بلاکیف پروردگار است اختیار هدایت به دست کسی نیست اگر کسی را تو بخواهی که او را رهنمایی کنی و اگر نخواهی او در گمراهی بماند نه هدایت در دست پروردگار است اسباب و عوامل هدایت را پروردگار فرستاده است هدایت را هدایت کسی را که پروردگار خواست او رهنماست رهیاب است اما هدایت کسی را که پروردگار نخواست او در گمراهی افتادگی است من یحده الله و فود و من یگر کسی را که پروردگار هدایت کند او رحیاب است و کسی را که پروردگار گمراه کند باز کسی نیست که او را از گمراهی برای مستقیم و با جاده حقیقت دین مقدس اسلام راهنمایی کند کسی دیگر باز نیست اگر هدایت در دست انبی مصللات و السلام می بود از همه اولتر ایشان شد خاندان خود را برای مستقیم هدایت می کردند. رهنمایی بود در دستشان که مردم را از منکرات، از بکپرستی، از فجایی مانع شود راه مستقیم دین مقدس اسلام را برای ایشان راهنمایی کنند. اما هدایت در دستشان نبود که خامخا ایشان رهیاب شود اگر می بود از همه مهمتر اهل و عیال و پدر و برادر و پسر خود را هدایت می کردن اما زمانی که ما شما کلام پروردگار را مطالع کنیم از کلام پروردگار علم در میابیم که اکثر انبیاء علیه مصلاة و سلام می کسی پدرش مشرق کسی پسرش مشرق کسی خاندانش مشرق و فرستادن انبیاء علیه مصلاة و سلام هم خاطر کی بود هدایت شما ببینید واقع حضرت نوح علی نبی علی نوح, نوح علیه السلام و نوح علیه بود که نوو نیم سال مردم را به طرف دین الهی دعوت می کرد. لاکن در تمام نوو نیم سال در این مدت 84 نفر بالای حضرت نوح علیه السلام و ایمان. اگر هدایت در دست نوح علیه السلام و می بود کم از کم که سال یک نفرم ایمان می آورد نوو نیم نفر می لاکن در مدت 9500 سال که حضرت نوح علیه الصلاۃ و سلام مردم را به طرف دین الهی دعوت می و 84 نفر ایمان آورد و طرز و طریقه دعوت نوح علیه السلام چگونه بود سو وقت میبرامد مردم را به طرف دین الهی دعوت میکرد در یک صحرا برشان ایستاد به جای ازی که قوم نوح علیه الصلاۃ و سلام دعوت دعوت نوح را لبیک بگوید از بدپرستی و فجای و منکرات روی بگردارند کدام دینه که نوح مردم را دعوت میکند او را بپذیرند نوح علیه السلام را سنگاران بکرد زمانی که شام میشد حضرت نوح علیه السلام در بین سنها گین بموند جبرائیل علیه السلام میامد نوح علیه السلام را از این سنها میکشید کدام زخم و جراحته که در بدن حضرت نوح علیه السلام اسابات کرده بود تداوی ازور حضرت جبرئیل علیه السلام شام کمیش شد باز حضرت نوح علیه السلام با حضرت جبرئیل علیه السلام میگو فیا جبرائیل آیا وظیفه ما فردا چی است؟ جبرئیل علیه السلام برش میگو کدام وظیفه که امروز انجام دادی همین وظیفه تو سوپ آم از نیم سه سال چنین وظیفه را حضرت نوح علیه السلام اجرا می کند به اوز از که قوم نوح به نوح لبایک بگویند نوح علیه صلاط و سلام را سنباران می کند زیر سنگ گیر می موند. اما نوح علیه صلاط و سلام مایوس نمی شود باز هم مردم را به طرف دین الهی دعوت میکنند. پس امروز باید هم علمای کرام ما دعوتگران محاسن سفیدان متنفذین که مردم را به طرف دین الهی دعوت میکنند. حتی کسی که مسئول یک فامیل است به طرف دین الهی فامیل خود را دعوت میکنند فامیل، قوم، قبله و جمع جامعه زمانی که دعوت شما را نمی شما معیوز نشوید وظیفه خود را شما ادامه بدهید و مسئولیت خود را خلاص کنید. و همچنان در ایراستا و نمای کرام یا دعوتگران که مردم را به طرف دین الهی دعوت می کند، هر آسیب و هر مشکل و هر مصیبتی که برای می میرسد وای که متحمل شواب را بپذیرند به خاطر ازی که ما بندین نشو ما توهین نشو ما اذیت نشو از راه دعوت شانه خود را خالی نکند شما همراه انبیار مسلط و سلام را ببینید از کلام الهی از احادیث نبوی مردم را آگاه بساز با طور و با شکل واقعی دین مقدس اسلام را به مردم آشکار بساز مقصود تام هم یگانه تطبیق احکام الهی در زمین الهی بوده باشد هر مشکلی که بر تو رسد او مشکل را بپذیر تحمل یک نفر را اگر پروردگار عالم به دعوت و به و هدایت کند از تمام دنیا بر تو بهتر است چرا رسول الله صلی الله علیه و وسلم به حضرت علی کرم الله وجه فرمایاد لان یهدیک الله لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لك من حمر النعام در جزیره العرب مال قیمتی و مال ارزشی پیش مردم شطر بودن اما رسول الله به حضرت علی نفرماید یا علی اگر پروردگار عالم به دعوت تو یک شخص را هدایت کند ای از او شطرها برای تو به است پس دعوتگرای ما علمای ما خطبای ما باید خسته نشود کلام <سحف> الهی را احادیث نبوی را به مردم مسلمان بیان کنند به شکل واقعی و هیچ احساسه حراس و خوفی را نه از دشمن داشته باشد و نه از کسانی که دشمن دین مقدس اسلام هستند شان نوح علیه سلام را ببینید اما هدایت در دست از است حتی از خاندان از او پسر از او به دین مقدس اسلام مشرف نمی بعد از نوی نیم سال دعوت حضرت نوح علیه صلاح و سلام به پروردگار شکایت می به پروردگار چی می قال ربی اینی دعوتو قومی لیلا و نهارا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءٌ إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ ٱلسِّرَّ مَارِ السَّلَامَ ما قوم خود را شب روز به طرف دین الهی دعوت کرد اینی دعوتو قومی لیلا قوم لیلان و احارا مدعوات کرد قوم خود را شب روز که از این بدپرستی، پرستی از این منکرات از این فجای رو بگردانید به طرف دین الهی وحدانیت الهی متوجه شوید لکن نتیجه دعوت ما چی بود فلم یزیدهم دعای الا فرارا برای ایشان دعوت ما هیچ فایده نرسان مگر فرارا که از مجلس وز و تبلیغ ما ایشان فرار میکردن قبول نمیکردن ونوح هر ایسلام با پروردگار شکایت میکند میگه که ای پروردگارا زمانی که ایشان را به طرف دین تو ما دعوت میکردم انگشتان خود را در های خود میمانند که تا صدای دین را نشنوند و لباس خود را جمع میکردن فرار میکردن باز همه معیوس نشدند. در صحنه ها و در میدان ایشان را جمع کردم، به طرف دین تو ایشان را دعوت دادم. و بالاخره رفتم در پشت دروازه هر کدام، دروازه را کوپیدم به طرف دین تو دعوت دادم، اما دین تو را دعوت نکردن، قبول نکردن دعوت مرا. بالاخره حضرت نوح علیه و سلم در شان قوم خود، به دعایی میکند که تمام قوم حضرت نوح علیه و سلام را توفانی. دوای نوح رساله مصل تزرع علی الارضی من الكافرين دجیارم. پروردگارا میگه، ای پروردگارا در روی زمین یک خانه از کافران نمان. دوای نوح را پروردگار قبول میکنه تمام قومشان را نیستن بود هدایت در دست از نوح نبود. هدایت قوم نوح را پروردگار مخواست. اگر هدایت در دست از وقت نوح علیه می بود قوم خود را هدایت میکرد. فامیل پسر خود را دعوت میکرد، هدایت نکرد، آمروند. پس پروردگار علالم من شما را به راه مستقیم هدایت کند جوانان ما را خانمها را فامیل ها را به طرف دین الهی پروردگار هدایت کند از این گمراهی و بدبختی و فجایعی که امروز در این جامعه را است پروردگار مسلمان را توفیق بدهد که با این فجایع و منکرات یا از تقالید غرب یا از هندونزم رو بگرداند به طرف دین الهی متوجه شوند کلام الهی را مطالعه کنند احادیث نبوی را مطالعه کنند ببینند که دین چی است و ما در کدام بدبختی و در مصیبت و هلاکت هستیم همچنین حضرت ابراهیم علیه السلام را ببینیم حضرت ابراهیم علیه السلام به نبی جلیل القدر پروردگار است حتی محدثین نوشته میکنند زمان که ابراهیم علیه السلام در دنیا استادم بود سر خود را بالا میکرد عش پروردگار را در خاطر افتو میدید اما هدایت در دست ابراهیم نیست اگر هدایت در دست ابراهیم علی نبی نوالیه صلاة و سلام می بود از همه بیشتر پدر خود را هدایت نکرد. شان ابراهیم را ببینید و پدرش را ببینید که یک مرد بودپرست و بودپراش پدر خود را دعوت میکند، به طرف دین الهی به صابع انداز خوب به صابع یک لحجه خوب چارجه به پدر خود صدا می کند. اسْقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ من ابراهیم علیه چهار جای به پدر خود پدرجان صدا میکنه کند و برش میگه که ای پدر تو عبادت نکو او چیزی را که نه قوی سامعه دارد که دعوت ترا یا عبادت ترا او بشنود و همچنان قوه باصره ندارد که تو عبادت از او تو را میکنید او ترا ببیند و همچنان عبادت چیزی را نکو که او مالک نفع و زرر نیست که جرد منفعت یا دفع ضرر از تو بسازد ای بودهاست هیچ چیز نمیتان باز به با پدرش میگو اینی قد جاءنی من العلم ما لم یعتی که فتبعنی اهدی سویا ای پدر از جانب پروردگار عالم بر ما علم و حکمت داده شده است او علم و حکمتی که بر تو پروردگار نداده است تو تابیداری مرا بکو ما راه مستقیم تو را رح میکنم باز برش میگو یا عباتی لا الشیطان. ای پدرم تو عبادت شیطان را نکو اینا شیطان کان للرحمان عصریا بخاطر شیطان کسیست که از پروردگار خود از رحمان او سرکشی کرده است باز میگه یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمان فتکون للشیطان ولیا یا می ترسم که نرسم از جانب پروردگار عالم بر تو عذاب زمانی که عذاب پروردگار بر تو اصابت کرد پس تو برای شیطان دوست می گرمید شما ببینید انداز دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام که به چگونه کلمات ادبی، به لحجه نرا پدر خود را به طرف دین الهی دعوت می کند اما هدایت در دست ابراهیم علیه السلام نیست مناسب این بود که پدر ابراهیم علیه السلام دعوت پسر خود را لبایت می گفت به کدام راهی که ابراهیم علیه السلام آذر را دعوت می کرد او را می پذیرفت. اگر پذیرفتنی هم نبود مناسب این بود که چهار مرتبه پسر پدر جان صدا می کند در مقابل خو یک مرتبه پسر می گفت اما چنین هم نمی کند جواب پدر ابراهیم به ابراهیم چنین است قال یا ابراهیم ارانبو انت عن عالحتی یا ابراهیم لئن لم تنتهی لارجمنک وهجرنی پدرش پدربر می ای ابراهیم پسرابرش نمی ک آیا تو مرا می گردانی از خدایان خود و خدایار را که ما عبادت میکنم آیا از عبادت از تو مرا میگردانی اگر این دعوت خود را نگذاری مرا به طرف ذات واحد الهی دعوت کنی لارجمان نکمت که سنسار می میسازد لكن ابراهیم علیه السلام باز هم مایوس نمی شود راه هجرت را در میگیرد به طرف شام می رود و از طرف شام به طرف مکه مکرمه می رود که اساس و بنیان کعبه را میگذارد در تبلیغ و در امر معروف و نهی از منکر کوشش ها و جهد و جهده خسته می کند مایوس نمی شود اما هدایت باز هم در دست ابراهیم است اگر در دست ابراهیم علیه السلام می بود از همه بیشتر به سر خود راهی داشت پدر خود راهی داشت من یهدیه الله فلا و ظل و من یدلله فلا هادی له کسی را که پروردگار هدایت کند باز کسی نیست او را گمراه سازد اما کسی را که پروردگار گمراه ساخت باز کسی نیست او را هدایت کند. اما اسباب هدایت است کلام الهی است اسباب هدایت است انبیاء علیه و والسلام <تصفح> اسباب هدایت است علماء کرام که همه روزه مسلمانان را از دین الهی آگاه می پس باید مسلمان بنده الهی دعوت کلام الهی را دعوت رسول الله علماء را لبایی که مگوین براه, براه قدم بگذارند. که سبب رضای الهی بوده باشد از راههای اجتناب کند که سبب غذب و لعنت الهی میگردد. هر کلان ما که در یک فامیل زندگی میکند مسئول از او فامیل است افرادی که در او فامیل زندگی می کند در ما تحت ازی که مسئولیت ازی بدوش ای پدر کلار است باید همه ایشان را از دین الهی آگاه بسازند از احکام الهی آگاه بسازند اما متاسفانه باید گفت که امروز در فامیلی پدر پدرکلان یا پدر زندگی می کند که پسر از اون ماز را نمیداند پسر از او قرآن را نمیداند دختر از اون ماز را نمیداند دختر از او قرآن را نمیداند از احکام الهی و از شرایط دین مقدس اسلام آگاه نیست آیا تو پدر را در روز آخرت پروردگار عالم به حضور خود کش نخواهد کرد؟ از تو پرسان نکرد متاسفانه که امروز زندگی ما زندگی غفلت آمیز است. چندین مرتبه براتان گفتیم به که موضوع کردم در مسجد آمدم نماز خواندم از فامیل خود آگاه نیستم از عذاب الهی و از حساب و مسئولیت که در مقابل اولاد خود داری خلاص شدنی نیست یکی از اسباب هدایت در فامیل اسلامی پدر مسلمان است یکی از اسباب هدایت در فامیل اسلامی شوهر مسلمان است برادر مسلمان است پدر مسلمان است اما متاسفانه در بعضی خانواده ها میبینیم کسی که مسئولیت دوش از در او فامیل خود از او تلام الهی را نمیداند، نماز نمی خواند، در فجایی و منکرات و بدخلاقی مبتلاست، آیا او فامول و او اولادی که در اوج زندگی میکند؟ از او چی تمامات شما داشته باشید. پروردگار الان به حال ما شما رحیب بودند، به حالت دشوار و ببرار است، لیکن هدایت در دست پروردگار است، دعوت که مندم را به طرف دین الهی کسانی که با اخلاص و تضارور دستان آجزی و خود را به پروردگار بلند کند هدایت خود را، هدایت فامیل خود را، اولاد خود را از پروردگار بخواهد پروردگار هدایت می کند انسان سی روز دارد یکی روزی که گذشت یکی روزی که است، او هم غیب است معلوم نیست که زنده است یا نیستی یکی روزی که امروز زندگی میکنی ام امروز از پروردگار بترس. در امی روز حالی که تو قرار داری دستان عاجزی خود را به پروردگار بلند کو بتزرو عاجزی ارف پروردگار از گناهان خود مخفریت بتل به امید از این نباش که من سال و 15 سال عمر دیگر میبینم با باس به پروردگار عبادت میکنم آیا زمانه آسمانات کرده کردم میتونی که از مسجد تا خانه زنده داری؟ پروردگار به حال ما شما رحم کنه همچنان خاتم الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب الاله العالمین وظیفه از او هم همین بود که مردم را به طرف دین الهی دعوت کند مردم را از بپرستی و شرکی که در مکه مکرمه را ایج بود دارد و صدای وحدانیت الهی را بلند کند و در این رسول الله صلی الله علیه وسلم تکالیف زیادی را متحمل شد حتی به رسول الله خطاب جادوگر شد خطاب کاهن شد خطاب دیوانه شد خطاب شاعر شد لتوکوب شد اما رسول الله مایوس نشد مردم را باز هم به طرف دین الهی دعوت می کرد بالخصوص زمانی که وحی الهی به رسول الله آمد که پروردگار برش گفت وانظر عشیرة اقربی قوم قبیله اقربای نزدیک خود را از دین الهی آگاه بساز و ایشان را بترسان تمام مشرکین مکه به حضور طالب جمع می شود با ابو طالب میگوید که برادرزادی تو به دین ما به خدایان ما توحین می کند مردم را از دین ما منحرف میسازد مانع دعوت برادرزادی زاده خود شد رسول الله صلی الله علیه و سلم را ابو طالب دعوت میکند اما رسول الله برش چه میگوید والله لو اوزع شمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترك هذا الامر ما تحرکته قسم به ذاتی که مرا آفرید است اگر آفتاب را بیاورم در دست راست ما بمانند و محتاب را در دست چپ ما بنهند با ای خاطر که مراه دعوت را بگذارم هیچ گونه مراه دعوت را ماندنی نیستم یا در ای را به هدف خود میرسم، یا در ای را ما کشته میشم معیوس نمیشد امروز باید علما بیدار شود دعوتگرا بیدار شود از دین الهی مردم را آگاه بسازند چنانچه کلام پروردگار خطاب دارد. به همین چون این مردم را آگاه بسازند چنانچه احادیث رسول الله کتاب دارد به چنین ترتیب مردم را از دین رسول الله آگاه بسازد فقها و مشتهدین که چیزی فرمودند به همان طریق مردم را از دین الهی و آگاه بسازند خوف و حراسی نداشته باشند کدام آسیب و تکلیفی که برای ایشان رسد او را باید ایشان بپذیرند دین الهی به طور سهولت و آسانی که امروز در مسجد نشسته است. هر کدام نام الله و رسول الله را می گره. ای آسان نامد است شما شان رسول الله را مطالعه کنید سیرت و صحابه کرام را مطالعه کنید که خاطر دین ایشان چگونه تکالیف را برداشت کردند شان ازواج مطهرات و باقی صحابیات را مطالعه کنید که حتی مبارک ها از یک پای در یک پای اسب بسته می شود و از پای دیگر در پای دی به دیگر اسب دو پاره می شود اما مردم را به طرف دین الهی دعوت میکنند هیچ وقت واخستان نمیشود دین تحملی را هیچ وقت قبول نکنی کسی بیاد تو دین را قبول بگذارد که تو برای دین گردن بمان نه خودت مسلمان هستی در جامعه اسلامی زندگی میکنی کلام الهی در پیش روی تو سیرت و احادیث رسول الله در پیش روی تو است مطالعاتو از اون پند بگی به دین اسلام گردن بمان بگذار که دشمن انسانیت و دشمن اسلامیت هر چیزی که میکند بگذار خود را از دین آگاه بساز. فامیل خود را از دین آگاه بساز. پسر و دختر نواسی خود را از دین اسلام آگاه بساز. ایشان را به اخلاق اسلامی موزین بساز. ایشان را به لباس و جامع اسلامی موزین بساز. اما چنین نه که ما در مسجد بیایم صدای الله اکبر را بلند کنیم. نه از مال خود خبر، نه از مال اولاد خبر، نه از مال و کردار و لباس دختر خبر. چنین مسئولیت یا به چنین راهی که تو را وارث ایران است. اسباب هدایت است کلام الهی به عوض از که در فامیل تماما دختران و پسران جمع شوند یک سریال فاسد ای های فاسد را ببینند و سوگ او را در اعمال و لباس و کردار خود عملی کنند کلام الهی را باز و برشان یک عایت کلام الهی را برشان بخان که پروردگار چی گفته است احادیث رسول الله را برشان بخوان کم از کم اگر نمی سیرت فارسی در بازار است یک واقع از غزوات و دعوت رسول الله را برشان مطالعه با چنین شانخالی کردن به حضور پروردگار عالم رفتن به ساموش است اما هدایت باز هم در دست رسول الله نبود وظیفش هم همچنین بود عامل و سبب هدایت بود. اما هدایت کسی را که پروردگار میخواست ایمان می‌آورد. هدایت کسی را که نمیخواست او در بدبختی و در مصیبت افتادگی بود ابو طالب کاکای اصلی رسول الله است از چل سال بالاتر حمایت پیغمبر علیه السلام را می‌کند. در مقابل قوم و قبیلۀ خود اظهار و اعلان دشمنی را می کند. اما زمانی که ابو طالب وفات می شود قریب الموت می شود رسول الله صلی الله و وسلم در او مجلس میاید بر از می گوید که, که ای کاکای من در گوشم شهادت را بخوان، در روز آخرت به حضور پروردگار شفاعت تو را می کند سران مشرکین پرستان لعنتی در او مجلس نشسته بودند که در رأس ابو ابوجهل بود به ابوطالب می ای ابوطالب اگر تو امروز ایمان بیاوری شاید مشرکین و مردم مکه بگویند که ابو طالب از مرگ ترسید ایمان آورد ابو طالب از آتش جهنم ترسید ایمان آورد ابو طالب روح میگرداند به طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم برش میگوید من می با کدام راهی که تو مردم را دعوت میکنی این هم حق است با کدام دینی که تو اصلی و مردم را به طرف او دین دعوت میکنی ای دین هم حق است لیکن حداث ابو طالب را پروردگار نخواسته است در دست رسول الله نیست ابو طالب برش میگفتر نار علی العار آتش جهنم را بالای شرم بهتر دانستم ایمان نمی پروردگار عالم بالای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم برش علی میگوید که یا رسول الله ما با مکه قسم نمیخورم بخاطر ازی که در اوج مکه یادگار ابراهیم است کاعب ما بالای مکه قسم نمیخورم بخاطر ازی که در اوجا چای زمزم یادگار اسماعیل علیہ و سلام است ما مککاء قسم نمیخورم بخاطر خاطر که در کوجا صفا و مروه یادگار بی بی است لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد قسم به خاطر عزیز که تو در این قدم میگذاری و میگیری لکن انک لَا تَهْدِي من احببت وَلَكِنَّ الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمتقلب تو هدایت کردن کسی را که تو کنی تو هدایت کرده میتونی کسی را که دوست داری که کاکای تو است ولیکن الله یهدی من یشا لیکن پروردگار از که هدایت می کند که کسی را بخواهد و پروردگار به سا بیتر می داند که است پروردگار هدایت ما شما را بخواهد ابو طالب از دنیا بی ایمان می رسول الله به سا می شود باس پروردگار برش می گید لعلّا که نفسک اللّا یکون و مؤمنی شاید خود را تبا بسازی بخاطر از ایشان ایمان نمیارد ایمان ایشان را پروردگار نخواسته است رسول الله صلی الله و سلم لعاب مبارک خود را میگرد بدن بدن ابوطالب را مسع کند و در روز آخرت ادناترین عذابی که داده می شود برای ابوطالب است چپلی در پای از او داده می شود و یکی از پوههای جهنم در کف از او چپلین هاده میشد که از حرارت از او دماغ و مغزای ابو طالق در جوش میباشد اگر هدایت در دست رسول الله پی بود کاکای خود را هدایت میکرد که از چل سال بالاتر حمایت و تقویت رسول الله را کرد بلکه وزیفه انبیاء وظیفه علما این است که مردم را از دین الهی آگاه فلیکفر. میسازد هر وردگار میگو شما خو آگاه شده پس رضای کسی که کس از او کافر شود و رضای کسی که کس از او مسلمان شود لیکن نتیجه بیان می کند آقبتش را اینا اعطادنا للظالمین نارا باز برای الظالمین و برای کفار آتش جهنم را ما آماده ساختیم عمدترین، عمدترین سبب هدایت که از کلام الهی است چنانچه پروردگار می گو اینا حاز القرآن یهدی للتی ای اقوام به همی امی رهنمایی می کند با اون راه ثابت است. راه دین مقدس اسلام است کعبه هم راه سبب هدایت است هدن لناس پروردگار در کلام خود گفته است لکن متاسفانه بعضی از حجاج نال زمانی که زیارت حرمین شریفین نصیب ایشان بگردن و چشم ایشان هم بالای کعبه بخورن که بر بگردن به جای از که هدایت حاصل کنند دیگه هم گمراهی در ایشان زیادتر علت است که یا پول رشوت است یا پول حرام است یا پول سود است بهواسطه از در حج رفته است زمانی که هر چه لبی بی اوجه صدا کند از آسمان بر از او گفته می که لا کلاک ولا سعدی نه بر تو لبی کس نه بر تو سعدی کس حج و مبرور نیست شاید حاجصایبا ر دیده با عبه سبب ایت م یک واقع که چندین مرتبه بر شما گفتیم زمانی که ما حج رفتم یکی از دوستام بود احرام در جانش چهارپنج روزی شد که احرام ام چرک بود آخر از او پرسیدیم که است؟ او بر ما گفت زمانی که در حضور در پیش رویمسجد حرم میرا رو تمام جان و آتش میگرد، نمیتانم که وارد مسجد حرام از اونجا پس میگرد. یکی از دوستاف، او را از دست میگردد وارد مسجد حرام میسازد. زمانی که وارد مسجد حرام میسازد، که صدای میکند به حوش در زمین میافتد ساعت و نیم، ساعت بعدی که به حوش مید برازو تواف میدهد، صفا و مروه او را میدهد. خود را حلال میسازد، بستره خود را در حرم میاندازد، پروردگار را حدای و قبلا وزیفه چی بود شراخوری فحشا و منکرات و حالان اما مشناسمش که تارک یک سنت محمد رسول الله بیست سبب هدایت است قرآن اسباب هدایت است احادیث رسول الله اسباب هدایت است با این شرطی که از این ما شما استفاده کنید قومی که عمل به احکام الهی کردن عمل به اوامر الهی کردن عمل به قرآن کردن او قوم را پروردگار در دنیا هم عزت داد پروردگار در آخرت هم ایشان را عزت می دید. اما قومی که از قرآن سرکشی کرد اوامر الهی و احکام الهی را نپذیرفت، به اعتناگش او قوم را پروردگار در دنیا هم می سازد که دستان دشمنان و وحشی به خون ایشان صرف می باشد و در آخرت هم ذلیل که مسیرشان جهنم چنانچه رسول الله می این الله یرفع به ها در اقواما پروردگار بلند می سازد عزت می با ببواسطۀ ای کلام و قرآآن بسا قومها را و یا دعو ذلیل می سازد پس می سازد کلام به کلام بسا دیگر را قومانی که با احکام الهی لهبیک گفتند به دعوت قرآن را پذیرفتند لهبیک گفتند او قوم را پروردگار سرفراز و دنیا و آخرت ساخت اما قومی که از احکام الهی از عوامر الهی سرکشی کردند اشان ذلیل و دنیا و آخرت است باز هم اسباب هدایت عوامل هدایت را پروردگار بر ما و شما فرستاده است بپذیرین گردن بمانین زندگی فردی خود را زندگی فامیلی خود را زندگی اجتماعی خود را مطابق احکام الهی سپری کنید مسئولیتی که در قبال فامیل در قبال وطن در قبال جامعه و در قبال اسلام دارید او مسئولیت را احساس کنید وگرنه در روز آخرت جواب ابو سور پروردگار شد سخت بود از پروردگار عالم برای فاد برای شما برای تمام کفاای اسلام توفيق اعمال نیک را که پروردگار برای ما هدایت کند اقو دو قولی هاذا استغفر الله لي ولکم